برنامه امروز چیست؟ امروز به شهرهای دیگر خوزستان می رویم. به شوش، شوشتر و دسفول این شهرها هم مثل اهواز دیدنی هستند؟ بله، ما از آثار باستانی این شهرها بازدید می کنیم. پس این شهرها هم قدیمی هستند بله، مردم از شش هزار سال پیش در شوش زندگی می کنند حضرت دانیال در این شهر است خوشحالم که به این شهرهای دیدنی می رویم در شهر شوشتر نیز به مسجد قدیمی شهر می رویم مسجد این شهر تقریبا هزار ساله است اغلب شهرهای ایران مسجدهایی با معماری زیبا دارند بله همینطور است در ضمن به معبد چوغازنبیل هم می رویم چوغازنبیل کجاست؟ چوغازنبیل یک معبد قدیمی و نزدیک شوش است یونسکو این معبد چند طبقه را در فهرست میراث جهانی قرار داده است.